عنصر <سؤال> 31. <سؤال> سرفید اسمی برم ازم پانیم دو سرفید اسم مبار اون جمعتون اجام اون و عجمع و عدلون و, عدل و ما شعر بکنه دیگه اس میشه دیگه نشود یعنی به تنوین نکنه جرهم نکنه اسم میشه به فتحه و نمیم نیهی که باعث میشه اسم یا یک اس یکیش حجما یعنی اس یک جانوشه و سه تعنی چهار عدد از دیگه اصلیش حدود انجام معرفه باشده در معرفه بودن فقط و فقط عارف پوری که معتبره بایدش بایدش باید. بعد و زایدت ها دانه زایدت ها بعد دو تا ز... دانه و دانه دو تا زایدش فعلان سمه ترک و یعنی اسم وقت داشته از مثال ترکیب از ای. ای داشته باشه این همین و وقت تا سفر یعنی اسم معنای اسم اسمی داشته باشه کدوم از این نحتارو بگیرید فرعه عجمیت فرعه یعربی باشه جم فرعه تنیز فرعه یه در اسم دو جم بشه شکل میشه که دارای دوتا یکی اسم یعنی فارد اشتباه که هر فعلی مشتق است یعنی ماثره اگر در اسم دو تا از اینا باشه یادت با هم در دو فرعیات تو مشتق چون به اسم تستون حکمتون و جمع اونم بعد من بمعرفه و فعلا ثم ترک قضا که وزنون فید وزنون فید ودتا سرست تین منها یم نا اصرف سنتین یعنی با دوتا منها از این با دوتا از این یم نا اصرف صرف یعنی همه یم نا و کسر جدیب کذا به همچنین با یکی شد ایشون من یکی که این صفت داشت، آبد نیابت کرد یعنی نیابت از یک، تا. و هاکزا به فقال باید. یک چنین یعنی دو برابر کردن دو تاش یابت جا... از یک سبب و سر ممنون نشه و سر فلی اسم تس و جمع و بعد و زائده تافه هرکورد کذا ناب خلاصه حالا تفسیرش رو بعد ببینیم شروع می‌کنم ولد. اول عجب. او. از بیج کوهونی با چه اینا سبب منع صرف این طور بتونن با هم دیگه بیان ما بتونه با 8 جنب بشه بتونه با یکی یا دو تایی دیگه نیست که مثلا تعنی علت دیگه جنب شد. هر کدوم سی دارن و خاصی از اسباب دیگه من دیگه سر بیجا بکنم ول اجمه و سر علی علم علعجمی یل علم, علم تم نام مانه حرف علم رو پس اجمه با من که گفتی منظور از معرفه علمی سایر معارف از مصر تناقض دارن سایر معارف مصر تناقض دارن زن شروع محصول اصلا که اصلا مقنی هست از اعراب توشون نمیاد و هل که اصلا معارض با منصرف بودن و غیر منصرف منصرف بودن معارض هست هل فلان بهش داخل شد یا اضافه میگه چی؟ کسران رو قبول میده؟ بهت غیر بودن؟ نه لذاب از معرفه منظور فقط میگه عجمیت جمع میشه به شرط این؟ این صفت رو داشته باشه علا علمیت علمیت او بینه؟ آقا شد میگل علمیت ای؟ نورو بشه. علف لاندار اضافه شده اصلش بوده یته علمیگتو یته چی باشه؟ عجمی بعد اضافه شد علعجمیگیل علم بعد عجم امینیت بیاد اینه که در بین همها علم باقو شده باشه به شرط زیاد صده آزاده خلیش اینه که کلمه هستم این دوتاش هست که ابراهیم هست ابراهیم هست که در بین عجم م. و حرف هم بیشتر م. عجمی هم هست نین بیشتر بلا هر رو که اوسطه حالا بی اگر یک سه حرفی بود سطحش ساکن بود مثل عجمی نو عجم و در بین عجم ها شده و ساکن باشد هر دو بسط یک سکون و از دلیل قرار دادن برای این سبک شده یه برکلام و زبانه نیست لیزان تنوین رو بپذیر در اونا تنوین رو قبول اگر وسط هر بود وسطش متحرک عجم در بین عجم ها بود و متحرک بسیم مثلا شکر حضرت آی شیخ میگه لا هر رو گره ها بزد متحرک و بوده سری وجود در اکثر آقایونه نه بگیم یعنی خبتند اگر وسطش هم تحرک باشد باز بگید منصره خبتند باید بیش ولو این کسی جلوه وسطش هم متحد باز سره کلن که میتونه جلوتن این که اکثر اینه که شد شما که یعنی اقلی از گفتن که اک... من به خاطر تقنیم باز این کلمه سر و دهیمون سر علم با عجم عجم اینه که نجمه ها باقید و کلمه بیش هست درد باشه تربی بود کل وسط بود مثل نوم نوم صرفه کل وسط بود چطور؟ میگه نزد اکثر مد و اقل لیونو غیب میدانم به خاطر اینجا اون کلمه رو سر میدانم ولا اثراله درسته این درسته جمع و یم نعسته اینه مفاعل و مفاعل ول جمع میگه جمعیت مانع میشه مانع میشه اینه مفاعل و وزن مفاعل یعنی این اگر در نظر بگیرید مفایی این دوید گفت دارن و خود جمع فقط علت یعنی یه علتیه که نیابد علت حساب میشه یه منتحل جمعون یه بار جمع بسته شده همون جمع جمع یعنی مثل جمعش میشه اکلوب لب جمعش میشه اکالب اکالب بر وزن دو میبینید دو دفعه اگرچه بر آت... توی این وزن دو دفعه نشده مثل وزچر جمعش میشه یه دفعه همش میشه مفاتین ولی چون بر وزن یه آمده اند که معمولا دو دفعه جمع لذا جمع دو مفاتین جمع در غیر مزهر و اونه با سرف و وزن مفا مفایل قدر و دنانی دراهم جمع درهم زیر دراهم به نجد ناجد وزن مفایلی وزن این وزنی باشه که با مفایل باشه از جهد که حتما اول مثلا مثل مساجد. اگر مثل دراهم درهم هست هم یعنی این گفتیم فایل و مفایل این که اولشون نیم با و جمع باشن نیست درهم جمعش در مسجد جمعش مساجد دینا جمعش دنانی دینا دنانیر افتاح جمعش این که اولش میبیند ببینید دینا دنانی دو تا نون داره میر آ این یعنی شما هم دانم شما هم دوست پنی بیست مفا ایل یعنی هم فاتو هم اینتوم ولی در صورت نه نه داغ بکنیم حرف دو این چطور در موفر نونه اما تنونه جدوره میگن به فاضلی که در اصل بوده دین لا نون جنار هم بوده حرف متجانس بوده تواحد کردن یک جنس کسره بودن عبد کردن دنا دن یا اون یا رو این سه باچی آوردن تو با کسریه نار میگن از کجا نار اصلش یه نار بود میاد دنایی ایش دنا مسخرش میاد دون دونای شما میبینید بعد از تصغیر یا تبدیل به قانونی جمع و تس هر چیزی رو برمیگردونه به بر. خودش موردی که شما مصفقر میکرد تو توتار. تا کتاب اداره وقتی میشه شو هند میشه خود تا برمیگرد میگرد. چه دلیل به دلیل هر چیزی رو برمیگردونه میگردونه. پس ما فهمیدیم و اصل دنال که دراهم و دنال به علت این میگه این کردن از دو علت هم کرده است و او بیهی حزاجی اصله و حق شده به این کلمه ج... فاعل و مفاعل حذا به خاطر اصلش اش... اصلش هم بوده عالم جن برای کافر عالم جنس رو خون دام هد هم دو جور یکی مسز هم بک علم شم یکم برای شیر اسامه علم از آساد هم یعنی سامه از نظر لفظی معرفت، و سامه از نظر زی معرفت، و پروش پیویی سفته مهکادامی لیباف و از نظر زی معرفت از نظر لفظی نکته. نکره که در من دست ولی در لفت عرفه بهش میگن الف یفت yes. اسم از دست اما نه برای آز برکه ال اسم از از آجر هم است برای کم زبو و ذا زبوا نکره ام جر هم یعنی کفتاب ولی گفته میشه اما از نظر لفظی ما یعنی اگر خواستیم که بگم چطور میگن انا یعنی کفتاب این حظ کفتار گفته میشه مفرده وجه نیست یک کفتار این حاضهی حد. این حضاجر ها <تصفح> چرا پس این حضاجر رو غیر مفرده خاطر این که حضاجر قبل از اینکه که علم بشه دم این با هزن جروم و این کلمه یه هجر پار این این کلم اصلش یکی سی بوده که رجرون یعنی عظیم موربند رجرون عظیم عجالون هزج بعد این هزجر شده به جمع بسته بشه بشه هزجرم چهار حرفیه بسته میشه چی؟ ا یعنی گوکا اصلا از معنای جمع ده اس پس چون این اصل جمع لضا به اعتبار اصلش این رو منصرف حساب الان معناش جمع ولی در یک مساجد رو یک نفر جماعت داری یک مساجد مساجد اسم شد با مساجد که دیگه اسم با نیوار این این مسأله است که دو دیوار میگن. آیا منسلف یا به خاطر اصلیش این غیر منسره حساب نص که به خاطر ملحق شده به این تعادله و اوله قبلی بسن مفاهید مولا بسن مفاهید و مفاه چی؟ تزاجه اصلش یعنی یه قبل با اون که سراوی در اصلش جمع. سر... الان جمع الان به یک میگن سرابی در اصلش هم جمع چیزی این. اونو گفتید هست که در اصل این چی بهشم سر وزد لشبت سراویل و بین دنانی از نظر ون سراویل نست با دنانی خاطر همین هم امثال او شده پس سراویل صداحت شد خیلی من شده الان این نیست چی میگه ود امکان به این ببلاق شازلا و عبیزو میگه هم عبیزو منن لبن چیه؟ یعنی سفتر چی خیلی براش میگه با از عبیز از از افعال و تب که چرا چون ما از افعال برورز میتونیم به عبیز به و از ممیده که جناهک خروچ ان نسع رسید نادی یعنی بکنید در استعمال نادل قول معروف چاستین منال